براءت من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین این اعلام بزوری خدا و پیانبر او با کسانی از مشرکان است که با آنها عهد بستعید فسیحو با این حال چهار ما مهلت دارید که در زمین آزادانه سیر کنید هر جا خواهید و هرجا میخواهید بروید و بیاندیشید و بدانید شما نمیتوانید خدا را ناتوان سازید و از قدرت او فرار کنید و نیز بدانید خداوند خارکننده کافران است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 و بچین لذین کفروا به عذاب و اعلامی است از اس جانب خدا و پیانبر او به مردم در روز حج اکبر که خداوند از مشرکان بیزار است و پیانبر او نیز. پس اگر توبه کنید این خیر شماست ولی اگر از توبه خود کنید پس بدانید که خداوند را آجه ساخته نمیتبانید و کافران را به عذابی دردناک بشارت بده إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ قُمُوا لَهُمْ نَهَّارًا وَلَيْلًا حَتَّىٰ يَعْلَمُوا أَنَّ الْعَهْدَ حَقٌّ وَلَا يُخْسِرَ الَّذِينَ عَاهَدُوا ۖ وَلَا تَمْنَعُوا الْمَعْرُوفَ وَالْعَدْلَ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْكَلِمَ و سپس با شما به چیز کوتاهی نکردند و بر ضد شما کسی را پوشی باونی نکردند پس پیمان خود را با ایشان تا موعد معین آن به سر رسانید حقا که خداوند پرهیزکاران را دوست می دارد فإذا انسلقوا الأسكر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم وكعدوا لهم كل من قد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم پس چون ماهای حرام بسر رسید در هر جایی که مشرکان را میابید بکشید ایشان را بگیرید محاصره کنید و در هر کمینگاه بسر راه ایشان بنشینید توری که همه را های آمد و شد بر ایشان بسته شود اگر توبه کنند و نماز را به تمام و کمال برپا دارند و زکات بدهند پس راه ایشان را باز گذارید حقا که خدا بند و مهربان است وإن أحد من المشركين تجاورك فاجر محتى يسمع كلام الله ثم اذغه مأمن ذلك بانهم قوم لا يعلمون و اگر یکی از مشرکان است و پناه بخواهد او را پناه بده تا کلام خدا را بشنود با سپس او را به محل امنش برسان این از است که ایشان مردم نادان امن كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعن رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقام لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين. چطور می تواند نزد خدا و نزد پیامبر او برای مشرکان پیمانی باشد به جز کسانی که شما با ایشان در نزد مسجد الحرام پیمان بستید پس بس تا هنگامی که آنها در پیمان خود در برابر شما پا بر جا باشند شما هم با ایشان پابرجا بر جا باشید حقا که خدا بند پر را دوست می دارد. كاين تا وان يورهم لا يركموا فيكم الا هون ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتخبا قلوبهم واسترهم فاسقون چطور میتواند چنین پیمان پا برجا باشد در حالی که اگر بر شما غالباند در مورد شما نالایق خیشاوندی را به اوجت می و نه هم پیمانی را شماره را به زبان خودخوش می سازند ولی دلهایشان از شما متنفر است و از سر ایشان فاسقند اشترو بی آیات الله تمنا قلیلا فصد و عن سبیله انهم سا اما کانو یعملون در برابر آجات خدا به های نوچیز گرفتند و بسا مردم را از راک او باز داشتند حقا که است آنچه ایشان می کنند لا یرگون بی مؤمن ایلا و لازمه و اولائی که هم المتدون. در برابر هیچ مسلمانی نعلایق خیش آوندی را را آجت می کنند و نه هم پیمان را و هم ایشانند تجاوزگر فَإِنْ تَعُوَ وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَتَهُ الزَّكَاةَ فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ پس اگر تا کنند و نماز را به تمام و کمال برپا دارند و زکات بدهند برادران دینی شما و به این ترتیب اوجات خود را به مردمی که می دانند تفصیل می دهی. وإنك بعد لا و اینکه کم ایمان هم من بعض عهدیم وطنی در دین کم ثقیل امت القصر. اینهم لا ایمان لهم خود را بعد از پیمان بستن نقص کردند. شما را مورد تا دادند. پس با پیشبایان کاف مقاتلک کنید بیگمان ایشان را سفگند نیست یعنی بسفگند خود فابند نمی باشند تا باشد که خودداری کنند الا تقاتلون قومن کسو ایمانهم و هممو وهم اخراج رسول و اول مره اتخشونهم الله ان تخشوه كنتم مؤمنين. آیا با مردم مقاتلا نمی کنید که ساگندهای خود را نقص کردند و به اخراج پیامبر تصمیم گرفتند و ایشان بودند که اول به جنگ در برابر شما آغاز کردند از ایشان می ترسید؟ پس خداوند تضاواتر است که از او بترسید اگر مسلمان هستید قا پیررو الله میاییر هم ما وی عین لی او موای و معیم وش که سرور راقاواین مؤمین با اشان مقاطره کنید خداونند اشان را به دست شما اعاد می کندند اشان را رسوا میسازد، شما را بر اشان پیروز میقطاند تین ها گروه مسلمان را شفا میبخشد و یزهی بغیظ قلوبهم، و یکوب الله علی من یشاء، والله علیم حکیم. با خشم دلهایشان را می خدا توبه هرکی را بخواهد، می خدا بند، دانا و با حکمت است. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّن قَبْلِكُمْ وَلَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ كَمَثَلِ الَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا عَلَىٰ أَسَاسٍ ۖ غَيْرِ مَنزِلٍ وَلَا مَسْكَنٍ ۚ يُقَالُ لَهُمْ هَٰؤُلَاءِ مَن لَّمْ يُؤْمِنُوا و خداوند آن اده از شما را که جهاد کردند و جز خدا فیانبر او و مسلمانان کسی را محرم اسرار خود نگرفتند مشخص نمیگرداند و خداوند به آن چی می کنید آگاه ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین على انفسهن بالکفر اولئی که حرقت اعمال و اون خالدون برای مشرکان مجاز نیست که مساجد خدا را اعمار کنند در حالی که ایشان بر کفر خیشگواه اند همینهای اند که اعمالشان نابود شده است و ایشان که در آتش همیشه اند إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدن بگمان كسه مساجد خدا را از نظر عبادت و ساختمان آباد می سازد که به خدا و روز آخرت ایمان آورد نماز را به تمام و کمال برپا دارد زکات را بپردازد و جز خدا از کسی دیگر نترسد پس امید میرود که چنین کسانی از رهیابان باشند منارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الضالين او <تصفيق> يا عبادان هاجيان وحفظ يا مراقبه المسجد الحرام لا بعباده كسانك بخدا وروز اخرت ايمان اورده و در راو که خدا جهاد کردند مصابی میپندارید هرگز در نزد خداوند این دو گروه مصابی نیستند و خداوند گروه ستمگارن را رحیاب نمیسازد الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَهُوا وَجَادُوا فی تبیل الله بی اموالهم و انفسهم اعظم درجتن اندر الله و هم الفائزون آنهایی که ایمان آوردند، هجرت کردند و در راک خدا بمال و جان خیل جهاد نمودند در نزد خداوند بند درجه بزرگتری را حاجزند و هم ایشانند، پیروزمند یبشیرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم ها با آنها رحمتی را از نزد خیش و نیز رضامندی خیش و جنت را بشارت می که در آنها برایشان نعمت های جاودانی خالدین فيها ابدا ان الله عنده اجر عظیم ایشان دران جابدانه بسر سر بیگو این خداست که در نزد او مزد بزرگ است يا ایوه الذین آمنون لا تتخذون. و من ای مؤمنا بدالان و برادران خود را در صورتی که کفر را بر ایمان برگزینند دوست مگیرید و اگر کسی از شما ایشان را دوست بگیرد، پس هم ایشانند، ستمگار قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإحوالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تقشون كسادها ومساكن ومساك نتظونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربخوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بيقو اگر پدران وفرزندان وبرادران وهمسران وطايفي شما واموالك بدعس آبرد عيد و تجارتی که از کساد شدنش بیم دارید و مساکن مورد علاقه شما در نظرتان از خداوند و پیانبرش و جهاد در راهش محبوب تر است در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند گروه نافرمان بردار را هدایت نمی کند. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الأرض بما رحبتم ولنيتم مدبرين بیگمان خداوند شما را در بس آمیدان ها مدد کرد و در روز نیز آنگاه که شما را کثرت جنگاوران شما به شگفت انداخت. اما آن کثرت جنگاوران نیازی را از شما دفع نکرد و زمین با همه فراخی آن بر شما تنگ گشت و سپس پاشت گشتانده عقد نشینی کردید. ثم انزل الله سکینته وعلى رسوله وعلى المؤمنین و انزل جنودن لم تروها و عذب الذین کفر و ذلك بعد ازان خدا بند آرامش خود را بر پیانبر خیش و بر مؤمنان ارزانی فرمود ولشکرها یه را فرستاد که انرا ندیدید کافران را عذاب کرد و این است جزای کافران. ثم يَكُوبُ بعد آن خداوند توبه هر کسی را که بخواهد می‌پذیرد و خداوند آمرزگار و مهربان است. أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُمْ فَلَا يَقْرَضُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ شِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ای مؤمنا واقعا مشرکان پلیدند بنابر آن بعد از این سال ایشان به مسجد الحرام نزدیک نشوند و اگر از فقر می ترسید در صورتی که خدا خواسته باشد شما را به زودی از فضل خیش توانگر می سازد بیگمان خداوند دانا و با حکمت است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 با کسانی که نه به خدا ایمان دارند و نه هم به روز آخرت و نه چیزی را که خدا و پیانبر او حرام گردانی حرام میپندارند و نه هم دین حق را میپذیرند با چونین مردمی از اهل کتاب مقاتلت کنید تا با احساس تسلیمی جدیب بدهند و ایشان زلیل باشند وقالت اليهود زير زیرون الله وقالتن نصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفقون يهود گفتان كي عزيز بسر خداف ونصاراو گفتان كي ايساو بسر خداف اين گفتارشان بدهانشان گفتار از بیهوده اشان به این گفتار خیش با کافران پیشین شباهت دارند خدا آنها را بکشد چگونه از را که حق برگردانیده می شوند اتخذو احبارهم و روحبانهم اربعبا من دون الله و المسیحه من مریم و ما امیو ایلا اِلَهَا وَحِدَا لَا اِلَهَا اِلَّهُ الا هو و, من و رهبانان خود را به جز خدا به معبود گرفتند و نیز مسیح پسر مریم را در حالی که معمور نشده بودند مگر به اینکه که خدا بپرستند را بپرستند ذاتی را که جز او هیچ معبودی نیست فالکفر از آنچه شریک میآورند یریدون می ان تا نور خدا را با دهنهای خیش خاموش کنند ولی خداوند این را نمیگذارد تا اینکه نور خود را کامل کند اگرچه مشرکان را خوش کند و كله المشركون. که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه دین ها پیروز سازد اگرچه مشرکان را خوش نیاید. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وَالَّذِينَ يَتْمِزُونَ الْذَابَ وَالْفِضَتَ وَلَا يُنْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْبَابٍ عَلِيمٍ ای مؤمنان بگمان بس از علماء و رهبان واقعا مال مردم را بناحق میخورند و مردم را از راو خدا باز میدارند و کتانی که تلاب نقضه را زخیره میکنند و آن را در راو خدا خرش نمیکنند پس ایشان را بما مجازات داوته بشارت بده. يوم يوم ما عليا بينارجا اين ما بتوان در آلتش جهنم گرم سوزان کرده. و آن صورت ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ می کنند و با آنها می گویند که این همان چیزی است که برای خود گنجینه ساختید پس بچشید چیزی را که برای خود اندوختید ان عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فُرْقًا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ و قاتل مشرکین کافتا کمعی قاتلون کم ان اللہ مع تعداد ماها نفر خداوند در کتاب آفرین شئلافی از آن روز که آسمان ها و زمین را آفریده دو ماست که از آن چهار ماه ماک حرام است و جنگ در آن ممنوع می باشد این آگین ثابت و پابرجای بر جای است بنابراین در این ماه ها به خود ستمه کنید و از هر گونه خوندیزی بپرهیزید و با مشرکان به هنگام نبرد دست جمعی فیکار کنید همان گونه که آنها دست جمعی با شما فیکار می کنند و بدانید خداوند با پرهیز قرآن است. إنما نذل زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ویحرمونه و, و عملی واطئو عدت ما حرمالله فیحلو ما حرم الله زیین لهم سوء اعماله والله لا یهدی القوم الكافی مسیح یعنی تأخیر ماهاگ حرام زیادتی است در کاف که با ان کافران گمراه کردانی میشوند. شوند ایشان ماهی را یک سال حلال و همان ماه را سال دیگر حرام می شمارند. تا شماره ماه را که خدا حرام ساخته پوره کنند و به این ترتیب آنچه را خدا حرام گردانیده حلال ساخند اعمال ناشای سیشان به نظرشان خوب جلوه می کند و خدا بند گروه کافران را رایاب نمی ساخد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في في تغيير الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل أي مؤمنا شما را چه شده که چون به شما گفته می شود، در راک خدا به جهاد براید، خود را به زمین سنگین می سافید. یعنی از جا نمی جنبید، آیا به زندگی دنیا به عوض آخرت خشنود می در حالی که متاغ دنیا در برابر آخرت نیست مگر انده. إِلَّا تَنصُرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا غيركم ولا شيئاً والله على كل شيء قدير. اگر به جهاد بر شما را به عذاب داهناکی عذاب کند و قوم دیگر را به جای شما قرار میدهد و به خدا هیچ درری رفاندن نمیتبانید و خدا به هر چیز تواناست ایلا تنصوه فقد نطره الله از اخرجه الَّذین کفعو تانیتنین از هما فی الغار از لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأن ازل الله سكينته عليه وأن يده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او صلى الله <تكلمة> عليه وسلم را كمك نكونيد بيگو من خدا باند اورا هنگام كمك كارد كي كافران اورا بيرون رانداند او دوم دو نفری بود که در غار بودند هنگامی که بیار خیش می گفت غم مخور حقا که خدا با ماست پس خدا بند آرامش خود را بر او نازل فرمود و او را با لشکرهای تعیید کرد که آنها را نمی دیدید و قلیمه کافران را سرو ساخت ایشان را زبون و خار گردانید و کلیمی اراده و حکم خدا هماهن است بلندتر و خداپند صاحب قدرت و با حکمت. است في خدا و وتقا و وجهد باموالتم و أنفسكم في سبيل الله لعلكم خير لكم إن كنتم تعلمون به جهاد براو گید سبک بار یا کران بار و در راه که خدا به موت به جان خود جهاد کنید این براوی شما بهتر است اگر بدانید لو کان عربا من قریبا و سفرا قاقدا لستبعوک ولیکن بعدت علیم السقه و سیعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلمونهم لکابدون اگر دستاورد زود راست و سفر آسان می به بیشت را پیروی می کردند مگر مشقت بر ایشان دراز شد و زودی به خدا سفگند می که اگر می‌توانستیم. بیگمان با شما بیرون می ایشان خیشتند را حلال می و خدا می داند که بیگمان ایشان یقینا دروغ گوگند ابنت حتا لك الذین خدا بند تو را بخشید چرا ایشان را اجازه دادی تا کسانی که راست گفتند به طرفشن می شاد بعد روح را می شناختی لا استعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدو بی اموالهم و انفسهم والله علم من بالمجد. آنهایی که به خدا و روز جزا ایمان دارند از تو از این که به مال و جان خود جهاد کنند اجازه نمی گیرند، و خداوند بند به حال پرهیز گارند آگاه. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صرف آنها از تو اجازه می‌گیرند که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند دلهایشان در دل شک است و ایشان در شک خیش با ترددند ولو اراد الخروج لا و اگر اراده بیرون شدن را می داشتند برای آن آمادگی می گیرفتند. بلی خورابند از بیرون شدنشان ناخوشنود بود پس ایشان را صاف گردانید و گفته شد با کسانی که نشسته اند بنشینید لو غرض الا لا لكم يبغونكم وفيكم لهم والله اگر در بین شما بیرون می شدند به شما جس سستی چیز دیگری نمی افزودند و در بین شما شای افراگمی می کردند تا شما را به فتنه اندازند و در میان شما کسان هم بودند که به ایشان گوش پرامی دادند و خدا بند به خاول ستمگاران آگافت لقدر تغول فسنت من قبل و قله لکل امور حتی جاء الحق و ظهر امور الله و هم بیگمان از پیش نیز ست نجویی کرده بودند و کارها را برای تو وارو نکردند تا آن که حق جای خود را گرفت و حکم خداوند غالب گردید در حالی که ایشان تراخیت داشتند و من و از ایشان کسانی اند که می گوگند برایم اجازه بده و مرا به فتنه مینداز خان به فتنه افتادند و بی گمان دوزخ به کافران از همه جوانب فرا إن تصيرك حسنة تسؤهم وإن تصيرك مطيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قرل ويتولوا وهم فرحون أغربة خشيدات دهد إشان را نارا هاتمي ساتد وأغربة مصيبة برسد مي مسلحت خود را قبلا در نظر گرفت ایم و با شاد مانی برمی کردند <تصفيق> بگو جز آنچه خدا بند نصیب ما کرده به ما نمی رسد اوست کار سازمه و باگیت مؤمنان خاص بخدا تبکل برساند قل هم تربصون بنا إلا احدا الحسنین ونحن نتربص بكم ان الله بعذاب من بگو آیا برای ما جز این خوبی یعنی پیروزی یا شهادت انتظار میبرید ولی ما با شما انتظار میبریم که خدا برای شما از نزد خیش یا به دست ما عذابی برساند پس انتظار بکشید ما هم با شما انتظار کشنده هستیم بگو بخوشی یا ناخوشی خواست کنید از شما هرگز قبول نمی شود زیرا شما قوم باقی فَقَطْ السَّيِّدِ وَمَنْعَ عَنْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَصِّلُونَ وَلَا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى عَلَى و هیچ چیز معنی قبول صدقاتشان نشده جز اینکه ایشان از خدا و پیامبر او انکار کردند و به نماز نمی‌آگند مگر با کسالت و در راه خدا خرج کنند مگر اینکه کراهیت دارند فَلَا تُعْجِرْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدنيا وَتَزْهَقَ اَنفُسُهُمْ وَهُمْ كافرون پس داراوی با ابلادشان ترا بشگف نیم در حقیقت خدا ایشان را به این دارالازی و ابلاَد در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در فالت براوجد که کافرند و یعرفون بالل انهم لمنکم و لا هم منکم و لكنهم قوم یفرقون با خدا سوگند میخورند واقعا ایشان از شما گند ولی در حقیقت ایشان از شما نیستند مگر ایشان مردمی اند که از نشان دادن چهره باقعی خود سخت می‌ترسند لو يجدون او مغارات او لو اگر پناهگاهی یا غارهای یا درامتگاه میافتند واقعا به سوی ان ادول کرده میبودند و شتاب میرفتند و من هم من یلمز کس ودقات فا این اعطو منها رضو و این لم منها اذا هم یفخطون بس ایشان کسانی اند که بر تو در مسئله تقسیم صدقه ها عیب میگیرند اگر به ایشان صحنی از آن داده شود خوشنود می شوند ولی اگر به ایشان از آن داده نشود در آن حال خوشناه می انهم ما الله و رسوله و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 و زودی از فضل خیش برای ما می دهند ما واقعا از خدا می خواهیم. نه از کسی دیگر این برایشان بهتر بود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 بیگمان صدقهها یعنی زکات برای ناداران مسکینان معذفون اداره وجوه زکات معلفت القلوب آزادی بردگان پرداخت قرض قرضداران و در راه تقویت آگین خدا و برای مسافران فریضه است از جانب خدا و خداوند دانا و با حکمت است وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَخُذُونَ النَّبِيَّ يَأْخُذُونَ بِالْأُذُنِ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا والذين رسول الله لهم عذاب أليم. و از آنها یعنی منافقان کسانی اند که پیامبر را اذیت میکنند و میگویند او سخنباگ سخن هر است بگو او سخن شنوی است که به خیر شماست او به خداوند ایمان و به مسلمانان اعتماد دارد و رحمتیست است برای کسانی از شما که ایمان دارند ولی آنهایی که پیانبر خدا را عذیت میکنند برایشان عذاب دعتناک است یحلیبون و و الم يُعَلِّمُوهُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الفذي العظيم. شما بخدا تا شما را خشنود تازند ولی خدا و رسول او سزاباترند که خوشنود کاخته شوند اگر ایشان مؤمن هستند آیا نمیدانند کسی که با خدا و با پیامبر او مخالفت و نزاع کند حقا که بر او گش آتش دوزخ است در آنجا همیشه سر میبرد این است رصفاگی بزرگ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره نبیهم بما این میترسند که مبادا سوره در بابهشان نازل شود که ایشان را به چیزی که در دل‌هایشان است آگاه میسازد بگو تمسخر کنید بی گمان خداوند چیزهاي را كه افشاگ آن مي بر ملاقات است و انساً آلتهم نیکول ننماكن نخوب و قل ابي الله اگر با تأکید میگویند ما صرف حرف می و مذاخی می کردیم بگو آیا به خدا آو او و پیامبر او, با او تمسخر می کردید لا تعتذروا قد بعد ایمانكم بگمان بعد از ایمان خود کافر شدید اگر ما گروه از شما را عرف کنیم گروه دیگر را که گنهگار بودند عذاب می کنیم مردان منافق و زنان منافق از هم دیگرند به کار بد امر میکنند و از کار پسندیده باز میدارند و دست خود را پر میبندند خدا را فراموش کرده اند پس او هم ایشان را فراموش کرد بیگمان، منافقان هم ایشانند فاسق وعد الله المنافقین والمنافقات والکففار نار جهنم خالدین فيها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب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 أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُضِيَ الْأَمْرُ كَالَّذِي خَافُوا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 همان گونه که آنهایی که پیش از شما بودند بهره اندوز شدند و به گفتار بیهوده منهمک شدید چنان که ایشان منهمک شدند همان که اعمالشان در دنیا و آخرت زایع شده است و هم ایشانند زیانکار الم یاتیهم نبؤ الذین من قرنهم قوم محسین وعاب وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آیا به ایشان داستان پیشینیانشان نرسیده است؟ داستان قوم نوح، آز و سمود و قوم ابراهیم، مردم مدین و زیر زیرو رو شده برای ایشان، پیامبرانشان با نشان حاگ آمدند. خدا بر ایشان ستم نکرده بود، بلکه این خود آنها بودند که بر برخیفتن ستم میکردند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله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 و خدا و پیامبر او را فرمان می‌برند هم ایشانند که خداوند به‌زودی ایشان را مورد رحمت خیش قرار می‌دهد حقا که خداوند عزیز و با حکمت است واعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خوالدین فیها و مردان مسلمان و سنان مسلمان بهشتهای را بعد کرده است که در زیر درختان آنها جوی بارها جریان دارد در آنها جاوه دانه به سر برند و بر رهایشگاه های پاکیتا در بهشت های همیشگی و بزرگتر از همه رزای خدا بند و این است همانا پیروسی بزار یا ایوان نبی جاهدی الکفار والمنافقین و غلوب علیه و مقوام جهنم و بیسن مصیب ای پیانبر، با, با منافقان جهاد کن و بر آنها سخت گیر جاوی جا ایشان دو است و چه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن ياقويك خيرلهم و ايت وللهم عذبهم الله عذاباً أليما في الدنيا لهم في الأرض ولي ولا نصير. با خدا میخورند که کدام چیز بعد نکفتند ولی به شک کلمه کافر را بر زبان آوردند و بعد از اسلام خیش کافر شدند و تصمیم به چیزی گرفتند که آن را به سر رسانیده نفونستند انتقام نگرفتند مگر این را که خدا و رسولش ایشان را از فضل خیش بنیان ساخته است اکنون اگر توبه نموکند این برایشان خیر است و اگر روی برتابند خداوند به عذاب دردناک ایشان را در دنیا و آخرت عذاب می کند و ایشان را در روی زمین نکار سازی و نهم مددگاری و من هم من و از ایشان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خیش ما را برخوردار ساق بیگمان من صدقه می دهیم و بیگمان از مردم نیکو کار می شویم بخلو و و معرضون اما هنگامی که از فضل خود بانها بخشید بخل ور و با, با پیچی کردند و روی گردان شدند انقضى النفاق في قلوبهم الى يوم يلقونه بما خلق الله ما نفاق را در دلهایشان تا روزی که خدا را ملاقات کنند برقرار ساخت این بخاطر آن است كه از پیمان تخلف جستند و دروغ گفتند. الم یاًلم أن الله يعلم و, و الله نمیدانند که خداوند سخنان پنهان و رازشان را می داند و خداوند به همه امور غیب املا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصقات والذين لا يجدون إلا جدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم آنانی که داوطلبان مسلمانان را در صدقهشان مذمت می کنند و آنانی را که جز ثمره کار خیش چیزی را نمیابند که صدقه بدهند تمسخر میکنند کنند خداوند خود ایشان را مسخره کرده است و برایشان عذاب دردناک است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 خواه تو برای ایشان طلب آمرزش بکنی یا طلب آمرزش نکنی اگر تو هفتاد بار هم برایشان برای طلب آمرزش کنی هرگز خداوند ایشان را نمی این از سبب است که ایشان از خداوند و پیامبر او انکار کردهاند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. فَإِنْ خُلِّفُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ في سبيل الله وقالوا لا تنكروا في الحظ كنوجد مما أسد حر لو كان يبقهم متخلفان غزوه تبوك رسول خدا بجه خود نشستند شادمان شدند باز اینکه به مال به جان خود در راک که خدا جهاد کنند کراهیت نشان دادند و گفتند در گرما و جهاد بیرون نروید. بگو آتش دوزخ در گرما خود شدید تر است اگر ایشان میفهمیدند. آنها باگیت کمتر بخندند و بسیار بگیریند این جزاگ است که انجام می دادند که الله الى قائفت من اون للخروج نصحود بس اگر خدا ترا به سوی گروهی از ایشان بازگرداند که از تو اجازه بیرون شدن و جهاد را بخواهند بگو ابدا با من بیرون نشوید و هرگز همراه من با دشمنی نجنگید بیگمان من شما در نخواست بنشستن با متخلفان خوشنود شدید پس اکنون نیز با متخلفان بنشینید ولا لا فصلی احد من امات بر هیچیک ایشان که بمیرد ابدا نماز مگذار و بر قبر وی مایست حقا که ایشان از خدا و پیامبر او انکار کردند و در حالی که فاسق بودند مردند ولا توجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في دنيا وتذهب انفسهم وهم كافرون اموال واولادشان ترى بتعجب نهانداسد بی گمان خدا اراده کرده است تا ایشان را با وسیله آن در دنیا عذاب کنند و روحشان در حال براجد که کافر باشند و اذا انزلت سورت ان آمینو بالله و جاهدو مع رسوله استعزن که اون قول منهم و قادو زرنانکم مع القاعدین و چون سوره نازل شود که ایشان را توصیه کند به خدا ایمان آرید و به همراه پیامبر او جهاد کنید توانگران سربتمندشان از تو اجازه معافیت میخواهند و میگویند ما را بگذار تا با بازنشستگان از جهاد باشید. رضو بی این یکونو معا القوالد و قبع علا قلوبهم فهم لا یفقهون به این خوشنودند که با باز ماندگان یعنی زنان خاننشین باشند بردالهاویشان مهر زرشده است پس ایشان نمی فهمند لاكن وصولوا والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولائك لهم خيرات واولائك هم و آنها که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان به جهاد پرداختند و همه نیکی ها برای او جان و آنها ها رستگاران آنند لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز له خداوند به ایشان بهشت های را آماده ساخته که در زیر درختان آن جوی حال جریان دارد در آنجا جا به بسر میبرند این است رستگاری بزرگ و جا من الاعراب یعذن لهم و قعدن الذین الله ورسوله رسوله سیصیب الذین منهم عذاب أليم و معذوران از اعراب نزد تو آمدند که به آنها اجازه تخلف از جهاد داده شود اما آنها که به خدا و با پیانبرش دروغ گفتند بدون هیچ عذری در خانه خود نشستند به زودی کسانی را که کس از آنها کافر شدند و معذور نبودند عذاب درناکی خواهد رسید الماضى ولا على الذين لا يجدون ما يمثكون حرج اذا صحول ورسوله ما على المحسنين السبيل والله غفور رحمى تا آن را در راک خدا مصرف کنند گناهی نیست به شرطی که به خدا و پیامبر او صادق باشند به ملامت کردن نیکوکاران کاران نیست و خداوند بند آمر زنده و مهربان است ولا على علا اذا ما اتوکل تلا ما احمل علی히 تولوا تولوا و اعنهم تفيد منتم حزنا الا يجدوا من و ونیز اراده نیست بر آن حال که وقت نزد تو آمدند که آنها را بر مرکبی بر میدان جهاد سوار کنی گفتی مرکبی که شما را بر آن سوار کنم ندارم از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان عشق بار بود چراکه چیزی که در راه خدا انفاق کنند نداشتند اینما الزبیر على الذین يستأذنونك وهم اغمیاء رضو بایین یکونو مع و الله راه معاخظه تنها بروی کسانی باز است که از تو اجازه میخواهند در حالی که بینیازند و امکانات کافی دارند آنها راضی شدند که با متخلفان بمانند و خداوند بر دلهاشان مهر نهاده لذا چیزی نمیدانند يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كل لا تعتذروا لمن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ایبی هنگامی که به سو آنها که از جهاد تخلف کردند باز گردید از شما آذر خواهی میکنند بگو عذرخواهی خواهی ما, ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا و رسولش اعمال شما را میبینند سپس به سوی کسی که آگاه از پنهان و آشکار است باز میگردید و او شما را به آنچه انجام میدادید آگاه میکند و جزا می‌دهد. تیحرزون لکم اعرهو عنهم فا عنهم انهم رجس و مقوه هم بما كانون هنگامی که به سوی آنان بازگردید برای شما سوگند یاد میکند که از آنها اعراض و سرس نظر کنید از آنها اعراض کنید و روی گردانید چراک آنها پلیدند و جای گاهشان است هست بکیفر اعمالی که اجام می دادند یحبون لکم لترضو عنهم فإن ترضو عنهم فإن الله لا يرضا عن القوم الفاسقين والسفغان از شما میخواهند که ایشان راضی شوید اگر شما از آنها راضی شوید خداوند از گروه فاسقان راضی نخواهد شد اشد و بادیانی شیران در کاف و منافقت شدید ترند و سزاوار به اینکه احکامی را که خدا به پیامبرش نازل کرده ندانند خداوند، دانا و با حکمت است و من الأعراب من يتخذ ما ينفق ما و و يتربص بكم الدواء عند دائره سو و از بودن شيلان اند آنچه را مصرف ميكند یعنی زکات می دهند تابانی و بر شما گردش روزگار را انتظار می کشند بر ایشان سختی روزگار باد و با خدافند شنبا و داناست و من من یؤمن بالله والیوم الاخر قربت عند الله و صلوات رسول علا انها قربت لهم سید خیلونم الله فی رحمته این الله غفور وحیم و از با جانشنان کسی هست که به خدا و روز آخرت ایمان میابرد و آنچه را به حیث زکات می پردازد، موجه تقرب خدا و دعاهای پیامبر می‌داند. داند. خان، بی گمان، این چیزها ایشان را موجه تقرب خداست، به زودی خدا بند، ایشان را به رحمت خود داخل می گرداند. حقا که خدا بند آمرزگار و مهربان است.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 احتال پیش آهنگان نخستین اسلام از مهاجران و انصار و کسانی که ایشان را به نیکی پیروی کردند خدا از ایشان خوشنود گردید و ایشان نیز از خدا بند خوشنود شدند برایشان بهشت هاجر را آماده کرده است که در زیر درختان آنها جویبار بارها جریان دارد در آنجا جاویدانه بسر میبرند این است رستگاری بزرگ و من حولکم من الاراب منافقون و من اهل المدینه فاقیلات علمهم نَحْنُ نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم يوزدون از باود یا نشینانی که گرد و گرد شما جند منافقان هند و همچنان از اهل مدینه هستند که به نفاق کردهاند تو ایشان را نمی شناسی، ما ایشان را می شناسیم به زودی ایشان را دو بار عذاب می کنیم وست پس ایشان به عذاب بزرگ بازگردانی دمی شبند و آخرون اعترفو بذنوبهم خلقو عملا صالحا و آخرتین امعتم الله این و گروه دیگر به گناهان خیش اعتراف کردند ایشان عمل نیکو را با عمل دیگری که نکوهیده است درآمیختند. زود است خداوند شان را بپذیرد حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است خب من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم این صلاتک سکن لهم و الله از انبال ایشان صدقه بگیر تا ایشان را با ان صدقه پاک سازی و برکت دهی به ایشان دعا کن حقا که دعای تو برای ایشان موجه آرامش است و خداوند شنوا و داناست. الالم یعلمون ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويقبل و ان الله هو التواب الرحيم آیا نمیدانند دانند که بیگمان خداوند هم اوست که توبه را از بندگان خود قبول می و صدقات را میپذیرد پذیرد و بیگمان خداوند توبه پذیر و مهربان است و الله و و بگو عمل کنید به زودی خدا بند پیامبر با او و مؤمنان عمل شما را می و به زودی به سوی داناو جنهان و با آشکار باز کردانیده می سپس شما را و آن چی کرده اید آگاه می‌سازد و آخرون مرجون اما و اما علیم گروه دیگر قبول توبه شان به حکم خدا معتل گردیده است یا ایشان را عذاب می کند یا توبهشان را میپذیرد و خدا بند دانا و با حکمت است والذین اتخذو مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و لمن حارب الله و رسوله من قبل وَلَيَخْلِفُنَّ ن اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَارِبُونَ و کسانی که مسجد برای زرر و تقویت کفار و نفاق افغانی بین مسلمانان گرفتند و کمینگا که برای کتی که با خدا و پیامبرش از پیش جنگیده است بی گمان سوگاند می خورند که جز خیر اراده نداشته و خدا گواهی میدهد بر این که واقعا ایشان دروگو گوید لا تقوم فیه ابدا لمسجد استسعال تقوان اول يوم احق ان ایه رجالاً يحبون ان يتقه والله يحب المطهرين هرگز در آن قیام و عبادت مکن آن مسجدی که از رود نخواست بر پایه تقفا بنا شده شایسته است که در آن قیام و عبادت کنی در آن مردانی هستند که دوست می دارند فاکی زباشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد افمن <تصفيق> استس بمیانهو علا تقوامی نومای و رقوامی خیرون امن من استس بمیانهو علا تفاقی هرین فنها و بیدی نار جهنم والله لا یزی آیا کسی که بنیان امارت خود را بر ترس از خدا و خوشنودی او نهاده بهتر است یا کسی که بنیان آن را بر کنارهٔ زمین سیل برده که به شرف افتادن باشد نهاد است پس با آن در آتش جهنم فروریزند و خداوند گروه ستمگاران را راح یاب نمیسازد لا یزال بنیانهم الذي بنا وريبه فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عنهم که ساختند همیشه مایه استقرار دلهاگشان است تا هنگامی که پار شود و خدا دانا و با حکمت است اِنَّ اللَّهَ اَسْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ بِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وعدا عليه حقا في التوغاة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوض العظيم از مسلمانان جان و مالشان را در برابر بهشتی که به آنها می دهد خریده است ایشان در راک خدا می جنگند پس می کشند و کشته می شوند این بعد است بر خداوند، در تورات انجیل و قرآن چه کسی نسبت به خدا به عهد خیش وفاداتر است پس به داد و سطوری که به آن معامله کرده اید خوش باشید و این است همان دستگاری بزرگ. ادایون العابدون الح. ابیون اونون والگیریم م میینیم تا بکنندگان عبادت گان، در راک خدا،رککو کنندگان سجد کنندگان امر کنندندگان به کار پسندیده و نحیه کنندگان از کار ناپسند، نگهدارندگان حدود خدا همین حال گند، مسألة ماونانة باقية وباذن مشتبه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستوفوا المشركيين ولو كانوا لقُبَى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. برای پیانبر و مسلمانان سزاوار نیست که برای مشرکان اگر چی خیشا و هم باشند آمرزش بخواهند بعد از آن که برایشان روشن شود که ایشان اهل دوزخند و ما با آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش صورت نگرفت مگر به اساس ای که به او کرده بود چون به ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن خداست از او بیزاری جاست حقا که ابراهیم بسیار نرم دل و بردبار بود و ما كان الله ليضلكم من بعد اذهدهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم قرار نبوتك خداوند قومی را گمراه سازد بعد از آن که آن را رهیافت گردانی است، مگر آن که به ایشان چیزی را که باوجد از آن پرهیز کنند بیان کند فقا که خداوند به همه چیز داناست این اللہ له ملک استماوات والارض یحیی و یمید خاک پادشاکی آسمان ها و زمین از آن خداوند است. او زنده می و می و برای شما جز خدا هیچ کار ساز و مددگار نیست. لَقَدْ تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد مَا تاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و همچنین مهاجران و انصار که در زمان عسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود. پس از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ باز کردند. سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنن مهربان و رحیم است. وعلى الثلاثة الذين قلتوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا همچنین آن سه نفر را که در مدینه باز ماندند و از شرکت در تبوک خودداری کردند و مسلمانان از آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همۀ وسعتش بر آن ها تنگ شد و حتی جایی در وجود خیش برای خود نمی یافتند و دانستند که پناهگاهکی از خدا جز به سوی او نیست در آن هنگام خدا آنان را مشمول رحمت خود ساخت و خداوند توبه آنها را پذیرافت که خداوند توبه پذیر و مهربان است توضیح اگرچه این داستان مربوط ستن از اصحاب کعب ابن مالک مراره ابن ربی و هلال ابن عمیه است ولی در هر وقت و در مورد هر کس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي مؤمناً أز خدا بتبسيد و با صادقان باشيد ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرضبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصبون ولا مقاصد في سبيل الله ولا يتقون ولا يتقون موت أي يغيب الكفر ولا يملون من عزو النيل إلا كتب لهم به يعملون صلاة إن برای مردم مدینه و بادیانشینانی که در ماحول اوشان قرار دارند شایسته نبود که از اشتراک در غزوات با پیامبر خدا تخلف ورسند و این که به زندگی خود بیشتر از زندگی پیامبر رغبت ورسند این از سبب است که به ایشان هیچ تشنگی و هیچ رنج و هیچ گرسنگی در راک خدا نمی و به هیچ موضعی قدم نمیگذارند که کافران را به خشم آرد و هیچ ضربی را از دشمن نمیخورند مگر آنکه به سبب آن به ایشان عمل نیک نوشته می شود حقا که خداوند مزد نیکوکاران را زاویه نمیسازد ولا يُنفِقُونَ نفقة صغيرة وَلَا كبيرة وَلَا يقطعون وَادِيًّا إِلَّا كتب لَهُمْ لِيَجِزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ و هیچ مال کوچک را در این راه انفاق <تصفيق> نمی و بس میدان جهاد یا در بازگشت نمی پیمایم مگر اینکه برای آنها ها نوشته می شود تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد و ما کان المؤمنون نیست مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند چرا از هر گروهی تایفه از آنان کوچ نمی کند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی پیدا کنند و با بهنگام بازگشت به قوم خود آنها را اندار نمالگند تا از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداوی کنند یا اي الذین امنوا قاتل الذين يحلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه ان الله ای مؤمنان با کافرانی که نزدیک شما جند جنگ کنید و باید آنها در شما شدت و خشونت احساس کنند و بدانید که بیگمان خداوند با فرهیزگاران است و ما فَمَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَجِيبُونَ کن سوره نزور یابد ایشان این صورت به ایمان کدام یکی از شما افزوده است. پس به ایمان کسانی افزوده است که ایمان آورده اند و ایشان خوشحال می شوند. و آمّا الذين مرض فزادتهم رجزًا وما تُوَّهُمْ كَبِئْنَ و که در دلهاویشان بیماری پلیدی بر پلیدیشان افزود و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند آیا ایشان نمی بینند که در هر ساله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 و چون سوره نزول یابد یکی به سوی دیگری دیده میگویند آیا کسی از مسلمانان شما را میبیند سپس باز میگردند خداوند بند را از روشنایی باز داشته به سبب که ایشان مردمی اند که نمیفهمند لقد جاءكم رسول من انفسكم عليه شما بشما پیامبری آمده است رنج شما بر سخت است به خیر شما حریص است و بر مؤمنان رؤوف بع رهيم عاصد، فأنت ولو فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بس أكره بكر داند، بيجو خداباند، مرا بسنداف. جز او معبود نیست بر او توکل کردم و اوست پربرکار عرش عظیب